دوستان میدونید چرا خدا پسرش رو بر روی زمین فرستاد؟ آیا تا حالا تعجب کردید که چرا عیسی اومد؟ امروز خواهیم دید که کلام خدا درباره اومدن خدا به شکل یک نوزاد بر روی زمین چی میگه؟ کسی که قرار بود ناجی دنیا باشه و کسی که سر تا سر عهد قدیم درباره نبوت کرده بود. عزیزان به کلاس مهیج دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. امروز با هم کتاب لوقا رو در عهد جدید بررسی کنیم. دایما اینه که از درس امروز ما درباره کریسمس و این واقعیت که ما هر روز میتونیم آمدن عیسی مسیح رو جشن بگیریم لذت ببرید. حالا به دقت به درس امروز گوش کنیم. تقدیم به عالی جناب توفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و معموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی میکرد همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت به دانشکده یک کوچک کتاب مقدس خوش آمدید لغا انجیل خودش رو مثل یک مورخ با بررسی دقیق وقایه شروع کرد در جلسه قبلی ما در روی کرد لغا به خدمات ایسا دیدیم که او با بیانیه مسیح بررسی خودش را از خدمات عیسی شروع کرد. لغا ضمن معرفی ایسا و شرح خدمات او به ما گفت که ایسا خدمت خودش را با صدور بیانیه شروع کرد. بعد از صدور بیانیه اش او ماموریتش رو اثبات کرد و بعد به اجرای اون پرداخت. بعد رو به افراد مختلفی کرد و اونها رو به چالش کشید. از جمله رسولان و علمای دینی و البته به لحاظ کاربردی من و شما رو به چالش هشید که آیا در انجام و تکمیل هم با من همکاری خواهید کرد؟ در جلسه قبلی اشاره کردم که بسیاری از رهبران دنیا بیانیه ای دارند. کمونیستها ها بیانیه ای داشتند که به اون مانیفست می گفتند. سالها از نوشته شدن مانیفست گذشته بود و کسی برای اجرای اون گامی بر نداشته بود. حزب کمونیست فقط 17 نفر عضو داشت تا اینکه مردی به نام لنین به عرصه اومد. لنین رساله کوچکی تحت عنوان چه باید کرد نوشت. لنین به بیانیه کمونیسم معتقد بود و میخواست مشکلات و نیازهای دنیا را با اون حل کنه. شاید شما مثل من فکر کنید آیا بهتر نبود بعضی از شاگردان عیسی بیانیه او یا انجیل او رو میخوندن و بعد به مشکلات و نیازهای دنیا نگاه میکردن و شروع به نوشتن رساله‌ای میکردن تحت عنوان چه باید کرد؟ هر کدوم از شاگردان عیسی که به بیانیه او ایمان دارند و به نیازهای دنیا با چشم عیسی نگاه می‌کنند، ای کاش از عیسی سرمشق بگیرن اما این اونقدرام قدرام ساده نیست چون هدایت الهی با مشیت الهی چنان طراحی شده که هیچ کدام از شاگردان مسیح نمی‌توانند لایحه الهاقیه‌ای برای دیگر شاگردان مسیح بنویسند. هر کدام از شاگردان مسیح باید به حضور عیسی مسیح بیاند. همونطور که پولس رسول آمد و بپرسن خداوند از من می چی چیکار کنم؟ عیسی مسیح باید به هر کدوم از ما به طور فردی جواب اون سوال رو بده. اما امیدوارم وقتی که خدمات مسیح رو که از مفاد بیانیه او در جلسه قبل در انجیل لوقا دیدیم، روح القدس کار برد اون رو در زندگی شما مشخص کنه. دعا می کنم که او بسیاری از شما رو به چالش بکشه که با مسیح قیام کرده در اجرا و تکمیل مفاد بیانیش مشارکت کنید و در خلوت دعایی خودتون از او سوال کنید خداوندا میخوای من چیکار کنم بعد از اینکه این, این رویکرد رو در انجیل لقا دیدیم حالا میخوایم بیایم و برخی متون رو که در انجیل های هم نزیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن در انجیل لغا بررسی کنید. اینها متونی هستند که در انجیل متا بررسیشون نکردیم اولین چیزی که در نگاه اول به انجیل لوقا میفهمیم اینه که وقتی دنبال متون مهم میگردیم متونی رو میبینیم که در انجیل های دیگر نبودند و اونها 132 آیه ای هستند که لغا در مورد تولد عیسی مسیح به ما میده. لوقا در بین نویسندگان انجیل مورخ بوده. لغا کسی هست که بیش از هر کس دیگری در عهد جدید در مورد تولد عیسی به ما اطلاعات میده. همونطور که بارها اشاره کردم مرقس و یوحنا هیچ اشاره ای به تولد عیسی نمی کنن و متی به طور خلاصه به اون اشاره کرده این لوقا هست که تولد عیسی را با جزئیات به ما میده بیاید ببینیم لوقا چه چیزی در مورد تولد عیسی مسیح می خواد به ما بده در ضمن این کار از شما دعوت می کنم که به کریسمس فکر کنید 132 آیه ای که لوقا در شرح تولد عیسی به ما میده می تونه به شش پاراگراف تقسیم بشه که این 6 پاراگراف مطالب زیر رو به ما میگن اولا پاراگرافی طولانی هست که در مورد تولد یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه بسیاری از انبیاء عهد قدیم انبیاء مسیحایی بودند که آمدن مسیح رو پیشگویی کرده بودند یحیای تعمید دهنده آخرین نبی مسیحایی هست. یحیای تعمید دهنده این فرصت رو داشت که عملا به مردی که در جاده داره به طرف اونها میاد اشاره کنه و بگه اینک بره خدا که میآید تا گناه از این جهان بردارد تولد یحیای تعمید دهنده یک معجزه بود نه مثل تولد از باکره در مورد عیسی بلکه مثل دیگر شخصیت ها در کتاب مقدس تولد یحیا از این نظر معجزه بود که والدین او بسیار پیر بودند پدر او کاهنی به نام زکریا بود و مادرش الیزابت هر دوی اونها افرادی خدا ترس بودند اونها در اراده و در اطاعت خدا گام بر داشتند افرادی بری از عیب بودند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 و تعجب میکردن که چرا بازگشت او اونقدر طولانی شده وقتی او بالاخره از معبد خارج شد نمیتونه صحبت کنه و اونها از قیافش فهمیدن که باید در معبد رویایی دیده باشه عجب تصویر غم کاهنی پیام بزرگی برای قوم خدا داره اما نمیتونه صحبت کنه بی ایمانی او او رو لال کرده صراحتن بهتون میگم بی ایمانی هنوز هم بسیاری از خادمین رو که باید بشارت انجیل رو بدند لال میکنه. نویسنده مشهور رادیارد کیپلینگ گفته گوسوندان منتظرن و غذایی بهشون داده نمیشه و غم زینه که اونها بر سر سفره پدر نشستند کیپلینگ داشت این واقعیت رو شرح میداد که در بسیاری از کلیساها گوسوندان منتظرن و توقع دارند که از کلام خدا تغذیه بشن اما بهشون غذایی داده نمیشه. و قمنگیز اینجاست که اونها بر سر سفره پدر نشستن تا از کلام خدا بشنوند. چرا اونها از کلام خدا نمیشنوند؟ چون بی ایمانی کسانی رو که باید به قوم خدا کلام مقتدرانه خدا رو موعظه کنند لال کرده. بعد از اون جبرئیل فرشته نزد مریم باکره میده که دختری روستایی و احتمالا خیلی جوان هست. جبرئیل با او ملاقات میکنه و خبرهای خوشی رو به او میده که به زکریا داده بود به او میگه سلام بر تو ای که مورد لطف خدا هستی خداوند با توست تو این فرصت رو خواهی داشت که عملا مادر خدا بشی مریم مثل کاهن بی ایمانی نشون نمیده اما مترره و سراسیمه میشه کتاب مقدس میگه مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است من با هیچ مردی رابطه نداشتم متن ملاقات مریم و فرایند بعدی اون ملاقات این واقعیت رو نشون میده که او به آنچه که فرشته گفته بود باور میکنه اما اولین کسی که در مورد تولد از باکر سوال میکنه خود باکره بود او پرسید چگونه چگونه این ممکنه خب اگه شما بودید سوال نمیکردید من معتقدم که بین شک صادقانه و بی ایمانی خیلی تفاوت هست بعضیا میگن ایمان بیشتری در شک صادقانه هست تا یک باور نصف نیمه شک کردن و سوال کردن الزامن بی ایمانی نیست واضح که کاهن باور نکرد و لال شد مریم باور میکنه در واقع وقتی اون میره که الیزابت رو ببینه که حالا حدود شش ماهه برای یحیای تعمید دهند آبستن هست الیزابت پر از روح میشه و نبوت میکنه و میگه تو در میان زنان خجسته ای و خجسته از ثمره رحم تو پس مریم باور میکنه هیچ شکی در این نیست اما سؤالی داره و بر چیزهایی در قلبش تعمل میکنه تا ملاحظه کردید که در انجیل لغا واقعی بعدی مربوط به قیصر امپراتور رومیان هست؟ مورخین سکولار که خیلی مایل هستند انجیل رو به لحاظ تاریخی به چالش بکشن، سعی کردن که به باب دوم انجیل لغا حمله کنند در باب دوم لغا اطلاعات تاریخی ارزشمندی رو میبینید. لغا باب دو میگه در آن روسا به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور آگستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کورنلیوس فرماندار کل سوریه بود. این یک واقعیت تاریخی هست. سالها پیش بعضی از محققین به این نتیجه رسیدند که وقتی کورنلیوس فرماندار سوریه بود، امپراتور روم مردی به نام اکتاویوس بوده و نام او آگستوس نبوده و به این دلیل انجیل لغا رو مورد انتقاد قرار میدادند. اما وقتی بررسی عمیق تری کردند متوجه شدند که این امپراتور شخص خودشیفته و خودپرستی بوده و به سنای اون زمان رفته بود و از اونها خواسته بود که به او عنوانی بدن که حس خودخواهی او رو ارضا کنه. اونها القاب مختلفی رو مطرح کردند اما هیچ کدام امپراتور راضی نکرد. بالاخره کلمه آگور رو پیشنهاد کردند که به او عنوانی الهی میداد و امپراتور از این خوشش اومد و فکر کرد که این برازندهش هست. اسم واقعی او قیصر آگوستوس بوده، لغا در وقعی تاریخی بسیار دقیق است و به این دلیل نام او رو قیصر آگوستوس اعلام کرده. نکته جالب در مورد این مرد این بود که فکر میکرد بر تمام دنیا حکمرانی میکنه و فرمانی صادر میکنه که تمامی مردمان تحت فرمان او باید بیان و سرشماری بدن و مالیات بپردازند. هر کسی باید به شهر زادگاهش میرفت تا سرشماری بشه. اگر این در بخش خاصی از دنیای امروز پیش میومد، در تمامی مسیرها ترافیک سنگینی ایجاد می‌شد. تصور بکنید که اگر قرار بود هر کسی در منطقه شما به شهر زادگاهش بره و مالیاتش رو پرداخت کنه چه وضعی پیش میومد. در فرمانی که توسط آگوستو صادر شد میتونیم دست مشیت الهی رو ببینیم که در کار هست. شما دانشجوانی که در عهد قدیم با ما همراه بودید یادتون هست که میکا در باب پنج آیه دو به ما این اطلاعات ارزشمند رو میده که مسیح در کجا به دنیا خواهد اومد. او میگه که مسیح در بیت لحم به دنیا خواهد اومد. وقتی ما مریم رو میبینیم، او از بیت لحم فاصله زیادی داشت. او تقریبا در شمال اسرائیل بود، جایی که بهش ناصره میگفتند. برای تحقق نبوت میکا، او باید در بیت لحم میبود. اگه با سرزمین مقدس یا سرزمین اسرائیل آشنایی داشته باشید، می دونید که برای رسیدن از ناصره به بیت لهم باید تمام طول اسرائیل رو طی کرد. وقتی امپراتور قیصر آگستوس فرمانش رو صادر کرد، این فرمان سبب شد که یوسف و مریم به بیت لحم برند. چون شهر زادگاهشون اونجا بود، هر دوی اونها باید در بیت لهم می بودن تا سرشماری بشن. خدا فرمان قیصر رومی رو به کار گرفت تا نبوت کتاب مقدسی خودش رو تحقق ببخشه. در انجیل لغا میخوانیم هنگامی که آنها در بیت لحم بودند وقت زایمان مریم فرا رسید و عیسی به دنیا آمد این یکی از بخش جذاب داستان کریسمس است که لغا برای ما گزارش میکنه. ما میخونیم که وقتی نوزاد به دنیا میاد در همون اطراف در میان مزاره چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری میکردند فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردن اما فرشته گفت نترسید من برای شما مجدهی دارم شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد امروز در شهر داوود نجات دهندهی برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت آخر جایی در استبل هست که محل تغذیه حیواناته آخر جایی نیست که کسی توقع داشته باشه نوزادی رو در اون ببینه. پیام فرشتگان به شبانان پیام بزرگ انجیل هست. در انجیل اومده اما فرشته گفت نترسید. من برای شما مجدهی دارم. شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهندهی برای شما به دنیا آمده که مسیح و خداوند است. انجیل به ما میگه که این خبر خوش برای همه است. مسیحیت مذهبی غربی نیست، مسیحیت برای تمام دنیاست، مسیحیت برای تمام انسان هاست، این فقط برای یک شخص و یا یک ملت نیست، بلکه برای تمام دنیاست، از همون ابتدای آفرینش. این شبانان واکنش زیبایی به پیام فرشتگان نشون میدن و میگن بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از اون آگاه ساخته ببینیم، اونا به طرف دهکدهی که مریم و یوسف اونجا بودن میدان. اونجا نوزادی رو خوابیده در آخر می بینن چوبانان همه اون چیزی رو که فرشتگان بهشون گفته بودن و اون چیزی رو که خودشون در مورد این کودک دیده بودن به همه می گفتن. تمام کسانی که داستان چوپانان رو شنیدن زده شدن اما مریم به آرامی این چیزها رو در قلب خودش به صورت گنجینهای حفظ می کرد و اغلب به اونها فکر می کرد. بعد شبانان به چراگاه نزد گله برگشتند. و خدا رو برای ملاقاتی که با فرشتگان داشتن شکر می‌کردند چون همون کودکی رو دیده بودند که فرشتگان خبرش رو داده بودند حالا می‌خوام ازتون بپرسم آیا به خبر خوش تولد عیسی مسیح ایمان دارید اگر به آیات مربوط به تولد مسیح همون طور که شبانان ایمان داشتند ایمان دارید آیا تا حالا این خبر خوش رو با کسی در میون گذاشتید بذارید این چوپانان سرمشق و الهام بخشتون باشند میلیون‌ها نفر هستند که تا کنون خبر خوش تولد مسیح رو نشنیدند و مفهوم واقعی اون رو درک نکردن. پس هنوز میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا هستند که این خبر خوش به اونها گفته نشده. آیا تا حالا با خودتون فکر کردید که چرا خدا به خودش زحمت داد تا در مورد این معجزه با شبانان صحبت کنه؟ در مورد جسم پوشیدن خدا و انسان شدن او؟ من نمی‌خوام سوالاتی مطرح کنم که شما قبلا نشنیده باشید. اما فکر می کنم به نفتونه که در این مورد فکر کنید. نوجوانی از من نمیپرسید که وقتی عیسی به دنیا اومد، اگر چنین قوقایی در همه جا بوده و همه چیز مطابق اون چیزی هست که ثبت شده، چرا سی سال بعد وقتی او گفت که من مسیح هستم، کسی به او باور نمی کرد؟ حتما فکر می کنید که هر کسی منتظر بوده که او بیاد، بلند شه و نقش خودش رو ایفا کنه و خدمتش رو برای مسیح شروع کنه. اما به نظر میرسه که مشکل بزرگ او این بوده که مردم بعد از حدود سی سال هم به این باور نرسیدن. چطور به این سوال جواب میدید؟ البته جواب اینه: چند نفر میدونستند که اولین موجزه کریسمس به وقوع پیوسته. چند نفر از مردم از این موجزه آگاهی داشتند. عملا تعداد زیادی نبودند. بنابر گفته یه لغا که مورخ موش کافی هست، زکریا و الیزابت کسانی بودند که می خبر داشته باشند. چون اگرچه اونها از سن باروری گذشته بودند خداوند یحیای تعمید دهنده رو به اونها داد وقتی خدا این خبر رو به اونها داد چون زکریا باور نکرد خدا او رو لال کرد اما خدا معجزات خودش رو از جمله در مورد زکریا و الیزابت به ظهور رسانید. کار بعدی که فرشتگان میکنن اینه که نزد مریم میرن یقینا اون هم اطلاع داشته اگه شما قرار باشه مادر خدا باشید فکر نمیکنید باید از این مطلع باشید پس فرشتگان نزد مریم میرن و به او میگن و این مجزه رو برای او آشکار میکنن. مریم دختر جوانی هست که با نجاری به نام یوسف نامزد هست. خب طبعا یوسف هم حق داشت که در این مورد کمی اطلاعات داشته باشه. فرض کنید شما نامزد باشید و نامزدتون به شما بگه که توسط روح القدس حامله شده. آیا شما باور میکنید؟ خدا میدونست که یوسف این حق رو داره که برای او هم مکاشفه بشه. بنابراین فرشته نزد یوسف میره و به او هم میگه تمام کسانی که بخشی از داستان کریسمس بودند به طور خارق ای از اونچه که قرار بود واقع بشه اطلاع پیدا کردند چون هر کدوم از اونها نقشی در تحقق اون معجزه بزرگ داشتند اینجا سؤالی پیش میاد چرا خدا برای شبانان آشکار کرد اونها چه نقشی داشتند وقتی خدا نزد زکریا این کاهن پیر رفت و در مورد معجزه کریسمس با او صحبت کرد کاهن به او باور نکرد. بی‌ ایمانی کاهن او رو لال کرد. بعد خدا به مادر خدا یعنی مریم باکره در مورد این معجزه صحبت کرد. مریم ایمان عظیمی داشت و شخص زیبایی بود. ما پروتستان‌ها احتمالاً زیاد روی مریم تاکید نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم ها بیش از حد بر او تاکید می‌کنند. او زنی بود که در بین تمامی زنان خجسته بود. او زنی مبارک بود. وقتی فرشته در مورد این معجزه با او صحبت کرد او باور کرد. اون چیزها رو در قلبش بالا و پایین میکرد، اما به کسی گفت این رو ملاحظه کنید وقتی فرشته نزد چوپانان میره چوپانان مستقیما به بیت می رن و معجزه را از نزدیک می بینند و میگن برویم این خبر حیرت انگیز رو به همه بگیم در تمام طول راه که به بیت لهم می و وقتی برمیگشتند به هر کسی که دیدن این خبر خوش رو می می‌رسوند چرا خدا اون چوپانان رو بخشی از معجزه عظیم خودش قرار داد من فکر می کنم به این دلیل بود که خدا میدونست این چوپانان باور میکنند و خبر این موجزه شگفتانگیز رو یعنی تولد عیسی مسیح رو به اطلاع همه می میرسونند یکی از خاربرد های بدیهی داستان کریسمس که توسط لوقا ثبت شده احتمالا میتونه چنین چیزی باشه در معجزه کریسمس خدا انسان شد و وارد تاریخ شد او به تاریخ بشریت علاقه داشت به این دلیلی که او تاریخ رو به قبل از مسیح و بعد از مسیح تقسیم کرد. خدا توسط مسیح وارد این دنیا میشه و این مهمترین رویداد در سرتاسر تا سر تاریخ بشریت هست آیا شما از این واقعیت مطلع هستید که عهد قدیم و عهد جدید در بسیاری از جاها به ما میگن که خدا باز این کار رو خواهد کرد؟ آیا از این واقعیت آگاه هستید که بسیاری از انبیای عهد قدیم که در مورد واقعه اول یا آمدن عیسی مسیح نبوت کرده‌اند؟ در مورد آمدن سانویه او هم نبوت کردند. بیانی مسیح رو در اشعیاش 61 ملاحظه کنید؟ این بیانیه نه تنها آمدن اولیه او رو نبوت میکنه بلکه در مورد آمدن سانویه او هم نبوت کرده. به این دلیل که عیسی در وسط آیه قرائت اون رو به پایان میبره و تومار رو میپیچه و به دست خادم کنیسه میده. عیسی ادامه نمیده و نمیگه که او روز انتقام خدا رو اجرا خواهد کرد. اما کتاب مقدس میگه که روزی خواهد رسید که خدا انتقام میگیره و همه چی رو اصلاح میکنه کتاب مقدس در عهد جدید و عهد قدیم میگه که تاریخ با مشیت الهی به پایان خواهد رسید خدا دوباره وارد تاریخ خواهد شد او تاریخ رو دوباره به دو قسمت تقسیم خواهد کرد در واقع بعضی ها از این دوره که ما در اون زندگی میکنیم با عنوان پرانتز بزرگ بین ظهور اولیه و عیسی ای یاد کردن. بیش از 325 بار در عهد جدید در مورد آمدن ثانویه عیسی مسیح صحبت شده. آمدن ثانویه مسیح موضوع اصلی تمام کتاب‌های عهد جدید است و ما این را در رسالات عهد جدید هم خواهیم دید. با این حال خیلی ها هنوز نشنیدند که عیسی مسیح باز خواهد گشت. بر اساس کتاب مقدس عیسی مسیح خواهد آمد و آمدن او امید مبارکی برای کلیسا و تنها امید این دنیا است. تنها امید برای این دنیا در نیکویی انسان و طبیعت انسان نیست. اگر تاریخ رو مطالعه کنید، میفهمید که تنها چیزی که یقیناً از تاریخ یاد میگیریم اینه که انسان هیچ درس عبرتی از تاریخ نمیگیره. این واضحه چون انسان بارها و بارها باز هم همون کارهای گذشته رو تکرار میکنه. من نمیدونم فلسفه شما در مورد تاریخ هرچی چی که میخواد باشه. من معتقدم که فلسفه کتاب مقدس در مورد تاریخ میگه اوضاع روز به روز بدتر و بدتر خواهد شد. همه چیز رو به وخامت خواهد رفت و تنها راه برون رفت با مشیت الهی هست. مشیت الهی تنها امید دنیا و امید مبارکی برای کلیسا هست. وقتی بیلگراهام سالها پیش در لندن موعظه میکرد از آقای وینستون چرچیل وعده ملاقاتی گرفتند. بیلی و برخی از کارکنانش به دفتر وینستون چرچیل رفتند که اون موقع نخست وزیر بود در فرصتی مناسب آقای چرچیل به بیلی گفت من میدونم که شما در اون محله درباره بازگشت دوباره عیسی مسیح موعظه کردید و می میگفتید که این تنها امید دنیا هست میشه لطفا توضیح بیشتری در این باره به من بدی بیلی گراهام عملا کل رو در عرض چند دقیقه برای او موعظه میکنه وینستون چرچیل محقق بزرگ تاریخ بود یکی از اعضای تیم اگراهام که در این مصاحبه حضور داشت شخصا اینو به من میگفت او میگفت وقتی بیلی حرفش رو تموم کرد آقای چرچیل روی صندلیش نشست و سرش رو تکون داد و گفت مگر اینکه یه همچین چیزی حقیقت داشته باشه وگرنه هیچ امید مثبت دیگری وجود نداره چرچیل نگفت که به این ایمان داره اما گفت اگر چنین چیزی واقعیت نداشته باشه هیچ امید دیگری نیست. وقتی شما داستان کریسمس رو میشنوید، کاربردش میتونه این باشه. اولین باری که عیسی وارد تاریخ بشر شد، خدا از افراد خاصی دعوت کرد تا نقشی در اون معجزه بزرگ ایفا کنن. اون ایده افراد زیادی نبودند. خدا به یک کاهن گفت و کاهن باور نکرد. شاید فکر کنید که کاهنین باید به خدا باور کنن، اما او باور نکرد. کاهنین میتونند از وکلا هم شکاکتر باشن. کاهن باور نکرد و بنابراین خدا گفت بسیار خوب من کار خودم رو میکنم من با بی ایمانی تو محدود نخواهم شد اما دهان تو را هم خواهم بست تو به کسی چیزی نخواهی گفت اما من معجزه‌ام را انجام خواهم داد خدا به ما گفته که عیسی مسیح دوباره برمیگرده آیا اینو باور میکنید آیا باور میکنید که بازگشت ثانویه مسیح تنها امید این دنیا هست آیا باور میکنید که بازگشت ثانویه مسیح امید مبارک همه ایمانداران هست؟ فقط یک راه است که میتونید بفهمید آیا به بازگشت سانویه مسیح ایمان دارید یا نه؟ آخرین باری که به کسی گفتید عیسی مسیح باز خواهد کی بوده؟ در قلب شهر لس آنجلس خیابانی هست به نام خیابان امید. روزی مردی با پریدن از ساختمانی سیزده طبقه در همین خیابون دست به خودکشی زد. روزنامه های صبح نوشتن او در انتهای خیابان امید دست به خودکشی زد. من فکر می کنم این تفسیر بسیار شیوایی بود در مورد همه کسانی که دست به خودکشی میزنند وقتی اونها به آخر جاده امید میرسن دست به خودکشی میزنند. شما هر روز با کسانی مواجه میشید که به انتهای خیابان امید رسیدند. اونا هیچ امیدی ندارند، اما اگر شما میدونید عیسی مسیح باز خواهد گشت امید دارید شما به عنوان یک ایماندار امید مبارکی دارید و تنها امید این دنیا را دارید اگر امید شما ناشی از ایمان به بازگشت ثانویه عیسی مسیح است باید این رو به همه بگید اگر مثل زکریا به اون ایمان نداشته باشید بی ایمانی شما دهان شما را خواهد بست و شما به کسی نخواهید گفت خیلی ها به بازگشت ثانویه مسیح ایمان دارند اما با چیزی گرفتار شده اند که من بهش فلج تضیی و تحلیل میگم. مثل مریم اونها هم چیزی رو در دلشون بالا و پایین میکنن آیا این در وسط رنجها خواهد بود در ابتدای رنجها یا در پایان رنجها؟ ها اونها فقط حول محور هزاره متمرکز شدند ما اون رو با مسئله رنجها متوقف کردیم من کسانی رو میشناسم که حتی با مردمی که با اونها در مورد چگونگی و زمان بازگشت عیسی موافق نیستند دوستی نمی کنند اونها اونقدر سرگرم تجزیه و تحلیل موشکافانه هستند که در مورد این خبر خوش با کسی حرف نمیزنند. اونا از این امید مبارک و تنها امید دنیا که بازگشت دوباره مسیحه با کسی حرف نمیزنند. چوپانان سرمشقی برای ما بودن وقتی چوپانان خبر آمدن خدا را به تاریخ بشریت شنیدند و فهمیدن که کلمه جسم شده قبل از اینکه ببینند باور کردند و این خبر رو به همه دادن کاربرد این برای ما بدیهیه من فکر نمی کنم که در مورد بازگشت سانبیه خداوند ما باید مثل زکریا عمل کنیم و حداقل در این مورد بخصوص نباید مثل مریم هم عمل کنیم که اونقدر گیج بشیم و اونقدر با تجزیه و تحلیل چگونگی اون مشغول بشیم که از دادن این خبر خوش به دیگران قافل بمونیم ما باید مثل چوپانها عمل کنیم پاراگراف ای در این داستان هست که هیجان انگیزه پیرمردی به نام شمعون و پیرزنی به نام حنا وجود داره وقتی مریم و یوسف مسیح نوزاد رو به معبد بردند که ختنه بشه، تا طبق آین مذهبی در آن روز او را رو به خداوند تقدیم کنن این پیرمرد هم اونجا بود. خدا به او گفته بود که تا روزی که مسیح را با چشمان خودش نبینه نخواهد مرد. وقتی مریم و یوسف نوزاد رو به معبد آوردن این پیرمرد نوزاد را در آغوش گرفت و گفت ای خداوند حال بنابه وعده خود خادمت را به سلامت مرخص فرما زیرا چشمان من نجات تو را دیده است اگر شما به جای مادر اون کودک بودید چه احساسی داشتید؟ پیرزن نبیهی به نام هننا بود که هرگز از معبد خارج هشتاد و 84 سال بود که او بیوه بود و در این مدت در معبد با روزه و دعا خدا رو پرستش می کرده. او هم منتظر منجی و نجات بوده او در مورد آمدن منجی با همه صحبت می کنه. او هم کاری مشابه کارش هم اون انجام می ده. این دو شخص پیر، شمعون و هننا افرادی خداترس ترس بودن. اونها منتظر اولین ظهور منجی بودن. آیا شما منتظر بازگشت سانویه ایسای مسیح هستید؟ در مباحثه کوه زیتون ایسا در این مورد با ما صحبت کرده. آیا شما به این باور دارید؟ اگر باور دارید، امیدوارم اینو به دیگران هم بگید. چون این تنها امید دنیا و امید مبارک ایمانداران هست. آیا اونقدر مشغول تجزیه و تحلیل این هستید که نمیتونید این رو به دیگران بگید؟ بیایید مثل شمعون، هننا و چوبانان باشیم و مجده این امید مبارکی رو که داریم به همه بدیم. عزیزان من داستان کریسمس رو خیلی دوست دارم. دوست دارم مثل چوبانهای فروتنی که وقتی مجده اومدن ایسا رو شنیدن و اونو به همه اعلام کردن، منم مجده بازگشت ایسا رو به همه دنیا اعلام کنم. آیا داستان کریسمس رو باور می کنید؟ باور می کنید عیسی باز خواهد گشت؟ پس به همه بگید امید در خداوند ما ایسای مسیح هست. بازم می خوام تشویقتون کنم از دیگران هم دعوت کنید در این دوری متعالیه کتاب مقدس به ما بپیوندن. تا برنامه بعدی اگر هم خداوند ما ایسا برنگرده امیدوارم فیض و حرامش اون شما رو سرشار از امید و شادی بکنه. آمین.